سلام خدمت رفقای عزیزم و هر جا که هستید حالتون خوب باشه سرحال و سرولند و پیروز باشید با قسمت دوم دو از پادکست یکصد با زیرزمین در خدمتون هستیم برنامه که ها محوریت زیرزمین ایران و هیپ هاپ فارسی تقدیم شما میشه این برنامه توسط کمپانی تهرپ و رسانه مستقل هیپ توراب ساخت و پرداخته میشه و در کنار من علی عزیز نشسته علی در خدم سلام مهام امیدوارم که حالتون خوب باشه من همین ابتدا یه عذرخایی بکنم بابت تأخیری که ما خیلی زود داشتین و باعث قسمت دوم رو به خاطر به دستتون می‌رسوندیم ما کوچپدایله یه سری مشکلاتی که بین همون که خودمون با آرتیست هامون پیش اومد و در نهایت اینکه یه سری درگیری‌های شخصی داشتیم که روی روزمرمون ما رو باعث کرد که خیلی طول بشه از این فازه دوباره بخوایم خدمتتون برسیم Daarom is het parameterschool van de moer beveiligd. Hoe moet het worden? Revolverkabel, bannometjes en Het is dat het artiest daarom een hesitante و حالا تا قبل اینکه بریم سراغ مصاحبه‌ها سعی می‌کنیم در مورد اتفاقاتی که توی مدت توی فضا ر فارسی به وقفه و با هم صحبت کنیم یکی از اصلی‌ترین اتفاقاتی که توی مدت باش درگیر بودیم بحث فیدبک‌هایی بوده که آرتتیست‌هامون توی فضاهای بین‌المللی رسانه‌های بین‌المللی از خودشون منتشر می‌کنن و آیا اینکه اصلاً این دست فعالیت‌ها توی فضای رسانه‌های خارجی و بین‌المللی تأثیری می‌ذاره یا یکی از اتفاقاتی که توی مدت افتاد بحث پخش کارهای آرتیست همون بودهش روی صفات آیتونز و صفات از این دست خارجی که باعث شدهش که چند تا از آرتیست خوب زیر زمینی من کار هاشون روی این دست فضا ها بذار نظر خودت چی هلی در مورد این داستان و نظر تأثیری میذاره؟ ببین داستان اینه که کلا مارکت های جهانی با مدیه هاشون خیلی دورن از هم دیگه کلا مارکت هم. های جهانی منظرم این تازه اولین قدمش میتونه باشه که ما بتونیم بعدها اقدام بکنیم واسه میدیه های خارجی چمینا مثل پیچ فورک و رسانه های از این دست که حالا ما اول باید انتشار کارهامون رو یاد بگیریم که روی مارکت ها منظم و دعیق باشه هر آرتیسی صفحه منحصر فرد خودش رو داشته باشه توی اون صفحه ها و در نهایت یه آرشیو کاملی ازش باشه یه بیوگرافی کاملی ازش باشه رزومه کاریش اونجا به قرار گرفته باشه که بعد ها حالا ما وارد مذاکره شدیم با رسانه‌های اونور و خواستیم نشون بدیم که حالا آقا رپ فارسی چیه تو نظر من هیچ دیدی ندارن نسبت به اینکه کاری که داره تو ایران انجام میشه به عنوان رب با اینکه حالا غیر مجاز ممنوعه حالا الان که خیلی بهتریه زمانی شلاق داشت نمیدونم از این داستان میگفتن شیطان پرستندا حالا الان داستان های دیگری به وجود اومده و شرایط اوضا خیلی بهتر شده واسه زیر زمین البته خیلی بهتر که تازه <تصح> هیچی نیست ولی به نظر من این حرکت حداقل چیزیه که ما میتونیم انجام بدیم و خیلی راه داره حالا حالاها حالا خودت به من کسی که من الان میدونم دسترسی داری به این صفحات و خودی که از افرادی هستی که داری کار آرتیست ها رو اونور منتشر می‌کنی شرط آرتیست همون ها اون چه جوریه کدومی که از آرتیست ها موقعیتش بهتره اصلا صفحات آیا به صورت استاندارد ساخته شده یا نه ببین داستان اینه که ما تا الان خیلی از آرتتیست ها رو اد کردیم روی آیتونز و اسپاتیفای و دیزر تا الان فکر کنم که به نظرم فرشاد رو داریم، عارف رو داریم، اشکان رو داریم. بام دادم هستش. پلاک کل کارهاشون الان روی آیتونز و اسپاتیفای که الان برای بار اول داریم اعلام میکنیم همین چیزی هره. رو. کل بچهای پلاک الان کارشون کارای اشکان، کارهای اشکان حامد اسلاش چند تا کار از حامد رو داریم و در نهایت همینجوری دارن اضافه میشن. Maar eerder in de dat de soevereine artiesten die we hebben, dat niet zo'n zielige اضافت قراره بشن به این داستان ولی در نهایت داره یه شاکله خوبی میگیره ما وقتی که اسپاتیفای شروع کردیم خب ما خودمون داریم این کار رو میکنیم با اینکه حالا یه سری دارن میگن ما اولی نیم ما اینا بس خودشون دارن ارزم <تصفيق> خدمتت که تازه داری یه شاکله خوبی پیدا میکنه ما اسپاتیفای تا یک ماه پیش که اولین کارا رو میذاشتیم شاد تعداد پلیای که داشتیم در روز شاد به یه دونه دو تا میره ولی الان کارهای از فرشاد هست که از هزار تا رد شده دریچه از هزار تا رد شده یه سری ترک ها و در نهایت الان می میتونیم بگیم که ما هم یه سری شنونده خارجی امکان داره داشته چون ما هیچ دیتابیسی نداریم که الان مردم دارن از کجای دنیا گوش میدن و این حالا به زودی اگر که تداد آرتیست بیشتر بره همچه قابلیتی بهمون اضافه میشه که بتونیم رسد بکنیم هم مردم خودمون دارن با این اپلیکیشن ها آشنا میشن که این خودش خیلی خوبه سمت یه سری اپلیکیشن هایی که دارن ضربه میزنن به رپ فارسی مثل که حالا اسم نمیبریم اینا ها همشون باعث رشد این قضیه میشه حالا ممیدونم نظار تو چیه ببین یه شاید یه باگی که این وسط وجود میاد بحث اینه که همچونکه خودمونم میدونیم زبان بیلو ملالی رپ فلوه ام. و شاید خیلی از آرتیس که ما داریم جا کارشون متشرم میکنیم از داره فلو سبکشون حالا جوری باشه که خیلی آلترناتیف باشه از فلوی نامناسب تری به موانه یک مخاطب خارجی استفاده کنه. این قضیه شاید به نظروند یکم باعث بشه که ما توی همین ابتدای کار توی این صفحات شاید یکم فیدبک های نامناسب هم بگیریم ببین خود داستان اینه که ما کاتگوری بندی که داریم میکنیم روی موزیک ها کاملا جدا خب یه جوری سباتون که مخاطب رو بفهم ببینید طبق بندی هایی که میشه کاملا طبق بندی شده تمام علومه دریچه میاد روی کتگوری هیپپپ رند میره آلترنتیف هیپپپ و کاملا اینها جدا جدا هستن و اگه اشتبه نکنم اولین مجموعهی که روی این دستفاط صفات قارگریه کار ارفان بود که خودش کارشو میرفت میذاشتش. آره اولین اتفاقی که افتاد برای ارفان بود اولین کاری که ماها حدودا ما هم انجام دادیم کلیشه بود و بعد مهم. به رند رسید و الان هم فکر کنم از س سیتای که خیلی بیشتر اصلا خود اعلان... مجموعه فرشاد خودش بیشتر سیتای الان فکر کنم نزدیک 120 ترک رو راحت هم. روی آیتیونز و اسپاتیفای داریم خب بحث این قسمت پادکستمون رو بیشتر میخواییم بذاریم روی منور این قضیهی ای که هایا اصلا این اس فعالیت ها با این دست همکاری ها تاثیر داره یا نه خب در مورد صفحات صحبت کردیم بریم سراغ همکاری هایی که تعال بین آرتستای فارسی زبان و آرتست هایپ هاپون طرف انجام شده بخوایم مرور بکنیم همکاری ها خیلی زیاده شاید شما خودتونم باورتون نشه ولی همکاری خیلی زیاد بوده یک سری از همکاری های خاص بوده که خیلی بولتر شده ام. که از بین اینا مثلا میشه به همکاری یاس و تکنای نشاره کرد مثلا همکاری که لیبل مختلف به کولجیرپ انجام داد حالا بیاییم جلوتر همکاری که بین حامد اسلش، عشقان، نیمانی، محساید مجازی و... کینکرو که انجام شد. در کنار این های دست همکاری های دیگه هم هست، من دش هم امروز دش میاد، اندرش هم مرور میکردم. از این دست همکاریها خیلی زیاده حالا خیلش بولد هم نشده بحث اینه که آیا این دست همکاری هام تأثیر میذاره چون این خیلی افراد هستن که مخالف این همکاری هان. میگن آقا آرتیس میاد حذینش رو میگیره حقیقتشو میگیره میره و تأثیر خاصی روی مارکت اون طرفی روی لیبل که اونا در کار میکنن نمیذاره. ببین آخه ببین بذم dus hier is het eten en een hie, en dan is het een یه مدلشون هست که شما آکاپلا می یعنی یه وکال آماده شده می من همه اصطلاحات دوبت توضیح بدم مثلا این کلمه لبخند زدم خودت فهمیدی یه سری بسترهایی هست که شما از یه خانندهی می توانین یه وکال آماده شده بخورید حالا البته صد درصد با اجازه اون آرتیست یعنی آرتیست می دونه که داره با کی کار می و اپرووال میده تعیید میده <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> و در نهایت شما همکاری رو میکنین آرتیست در نهایت کارو امکان داره گوش بده امکان داره گوش نده و همکاریش تموم شده <تصفيق> <تصفيق> این یه ای همکاری همکاری دیگه هست یا نخیر هر کاری روش کاری خودش داره هر وکالی که میرسه فلان قدر فلان هزینه بابتش انجام میشه آرتیستی که اون رو اون وکار رو داره از فرد اونوره آبی دریافت میکنه میتونه روش ایراد بگیره یا آقا اینجا رو عوض کنین این یه همکاری کامله این یه همکاری کامله بهش میگن کانترکت های 24-7 یا قراردادهای 24 ساعت 7 که شما یا حالا با منیجر اون آرتیست یا با خود آرتیست به صورت مستقیم در ارتباطی من فکر میکنم که خیلی از آدم‌هایی که الان دارن این پادکست رو گوش میدن برای بار اولی که دارن از این دست اطلاعات میگیرن. <تصفيق> و در نهایت اگر که این همکاری ها به شکلی باشه که توی مدیاهای اونور، مدیا رسانه‌های اونور انکاست داشته باشه 100 درصد کمک میکنه به کارهایی که داره توی رپ فارسی انجام میشه و بالاخره این رپ فارسیه فلاکش زده یه جوری صداش به یه جایی میرسه یا حالا تو مملکت خودش که خیلی به جایی نمیرسه هیچ وقت اونجوری که شاید و باه و در نهایت ما یه سری همکاری هایی داشتیم که با اونجوری که گفته شد نبود یعنی یه جورایی سر مردم کلاه گذاشتند اونم که تو میدونی یا به نظرم باید بدونی یه جورایی که یه چیزای خیلی واضحه مثلا همکاری کوجیر با هیچکس و علی قاف و ریویل. کلاً یه چیز دیگه بود داستان ورس کوجرات به نظر میومد که آماده است و قدیمی این داستان و حالا دوباره وکال گرفته شده روش بیت زده شده خب یه EC هم که من شنیده بودم این بودش که لیبلی که داشت ریویل توش کار می‌کرد شروع کرد همکاری کردن با مهدیار بعد اون لیبلی که ریویل داشت پیش کار می‌کرد یه همکاری هم تو یک مجموعه وریوس آرتست و کوجرب داشت Bovendien, man, ik solveer het, het helpt kan niet, ik in hamkari, budde, we gaan uit. is een man-didam. Lé, velen, mocht je af, het hárva, harkari, chère, tucesmehame, miya, man. Man, ik weet het, het helpt niet, kan niet, maar het helpt, maar het helpt, maar het helpt, maar het helpt, maar het helpt, maar het helpt, maar het het het maar het خب ببین حالا من خودم نمیخوام بحثو خیلی حاشیه‌ش کنم ولی اگه بخوای اینجوری تو در نظر بگیری ما هیچ عکس و ویدئویی هم از بچایی که توی کاری کلیشه هم کاری کردن با کینگ کروکت نداشتیم کلیشه حداقل کینگ کروکت خودش واکنست نشوند به پست و اینکه ها تو ایرانن آره اومد که آره چون کینکروکت کروکت کامنت گذاشت کینکروکت کامنت گذاشت و در نهایت سری اتفاقا قر بیفته که حالا بنابر یه سری دلیل و که ما تو ایران داشتیم رخ بعد حالا چون میدونم توی داستانهای کلیشم خودت خیلی فعال بودی کلیشه روی صفحه آیتونز هم متشر شد کلیشه اولین کاری بود که روی آیتونز روی صفحه آیتونز فیدبکیش چوری بود پلیش چوری بود ببین داستان اینه که اون موقع ما چون هیچ اتفاقی رو نداشتیم و اولش بود همشه اولی قربانی میشند ما خیلی حمایت خوبی نشد از آن رو آیتونز و در نهایت حالا اون اولین کار بود ولی کارهای بعدی هایی داره بهتر و بهتر و بهتر میشه نره حالا غیر مستقیم علی گفتش منم هم غیر مستقیم تر مونگم یه سری همکاری میرون دیگه دیگم <تصفح> تو راهه کار و کاری نداریم چیه ولی <تصفح> همهشون خیلی بوم خواهد بود خیلی هم حرف میخواهد بود از کسی که کسیم فکرشون نمی کنید <تصفح> <تصفح> حالا به زودی اینشالله خبرهای اونم توی همین چند این هفته آینده ایشالله انتشار خواهد مرسیده. خب طبق روندی که همیشه گاهنامه سوتیمون داره میریم سراغ بخش اول مصاحبمون و با توجه به اینکه که این گونه‌ناممون در مورد فعالیت‌های بین‌المللی هستش. رفتیم سراغ آرتिस्ट‌هایی که از این دست فعالیت‌ها رو تجربه کردن و با ترجمه بذائتمون توی رپ ایرانی آن هستیم. انتظار اینترنشنالیشی که مثلا بریم فرانسه بخویم باهاش همکاری بچه‌متفقه اینو صحبت کرد. رفتیم سراغ آرتिस्ट‌هایی که از این دست فعالیت‌ها رو تجربه کردن و توی بخش اول در خدمت حامد اسلش هستیم. بریم سراغ مصرا Chop, op de vraag, eerst vanuit podcast die ik staat bezig, zeg je dat je hebt meegenomen. Hamt ook je. ik heb, heb ik je in mijn programma meegenomen omdat ik niet zozeer Hamid Esleş Aziz is, en een قبل از اینکه بر ما ری‌استارت بزنیم من خدمتتون عرض که با توجه به مهاجرت امامیت به ترکیه ما مجبور شدیم که این قسمت رو به صورت تلفنی ضبط کنیم اگه احیانا مشکلی توی کیفیت صدا می‌بینید به بزرگی خودتون ببخشید دیگه خب حمید جان سلام در خدمت هستم اراد زده با احترام دارم خدمت شما و کسایی که توی ساخته این برنامه نقش دارم و دارم زحمت میکشم و همه کسی که دارند آسید به منو میشتم قربان شما آبا برای شروع قبل از هر چیز فکر کنم نیست نیسیت معارفه کتاست خود ساقل کاریت باید میخوا تا آمون بیکن من سید آمد معمودی هستم متقانده نوه چهاره 1369 در مشهد okay. و از سال 1826 بکنم دریبا ناره فعالیت حرفه ای توی رپ آغاز کرد. یعنی سال 86 که شروع کردی و خب چی شد که حالا سال 86 هستم با این معقوله رپ و فارسی آشنا شدی. منم به سرم به... با همون فکر کنم با همون جمله معروف رو بهش شدم و یکی ویدیو منو گرفت رو و گفت حالا رپ می‌خونی و یه سیگه به من داد و <تصفح> <تصفح> منم سیدی بود که از رپ رای یک رپ فارسی بود و من کلن با رپ فارسی با رپ باشنا شدم به با علاقه من شدم و بعدش حالا دیگه فعالیت خودم میگوستند به ترک بدم و چیزایی هم گوش کردم اما کلن با رپ فارسی و رای نسل یک رپ باشنا شدم و سال همون هشتد و شیش شمی به اون دن و همون سال هشتد و شیش هم اولین ترکی تو زبط کردید روسته؟ آره. و یادت اولین ترک واسن چی شد که وارد استودیو واسن اسمش چی بود یاد چی شد که اسام استرک استارت فور؟ آره 100% یادم هست 100% یادم نه چون که یکی از مهمترین اتفاقات زندگی من تو همون سال بود که کلا مسیر زندگی منو عوض کرده کرد وقت بخداشته باشم یک آره حتماً خاطر آره این ترکه من, من, من, من هر چند بود که فضای گنگی داشت و من یادمه که به چه سختی استدیو پیدا کردیم و عقیقا یادم ساعت 6 بعد از ظهر وقت گرفتیم. میزنم بود که اون روز برف خیلی سنگینی می اومد. و ما تو گشت گرفتیم تاکسیمون تصادف کرد تو را کردیم راه کیکاب بین با رکست. ما شب ما شب خیلی ماسترای خیامه بلکاباد تا وکیل‌آباد دویدیم تو دابل استودیو که صاحب استودیو وقت ما رو دید درو در بسکت کلا تعجب کرد گفت حتما تو آهنگت رو چک کنی که تو همچین برفی می اومد خیلی هم دقیق یه ساعتم دیگه رسیدیم و این سیری اونیش از ما گرفت <تصفيق> <تصفيق> خب خیلی هم دقیق یاده تقشنگ حافظه با نمودت خیلی قویی داریم ما خب من قبل از اینکه شروع کنیم صحبتم داشتم که فضل مجازی میچرخدم تا یه وزومهی پیدا کنم و با هم درم صحبت کنیم به این نکته خیلی جالب رسیدم اونم اینکه یه آلبوم داشتیم مثل اینکه یصاله جدید آره منتشر شده ولی خب هیچ لینک خاصی ازش توی فضای مجازی پیدا نکردم یه توضیح در مورد آلبوم میدی اصلا قضیهش چیه بله بله فکر میکنم من حدوداً 5 یا 6 تا کار بود که جمع کرده بودم با یه صدر به... سی با صدا توی بله صاحب تو سی رو آشنا شدم و با هم یه آلبوم رپ راک و متال تقریباً جمع کردم که فکر می‌کنم اولین آلبومی که را رفراگ رپوتر توی ایران بسته شد و آمد بیرون و با آهنگ سازه بسیار خوبی کار کردن و بهتری میشه مسئول فیاض داده بود ام. که کل مومو و یه سری دیگه کیسی سایدهای زنده رو زدن و این آلبوم مومو هزار تا سیدی زدی برای فروش گذاشتیم سال هشتون هفت خیلی از سایت هم پخ شدن و الان با تصویمان این که درستی نکام با اسم آلبوم چی بود؟ اسم آلبوم بود. بعد اه. یه مختری هم نبودی سکوت کرده بودی یه تایم خیلی زیادی اصلا اسم ازاد نبود تا گوشهاش بکنم رو سال پیش بود برگشتی و این ترکنی چی بود قضیهش مختر به مصابه دیگه هم گفتم و متاسفانه موجه منفی تو محشت دفتاد و شبی کردم بگرفتن سیدیو ها تو محشت, و محشت و ما مجبور به یه مدتی فرار شدیم و هم نتونستم فعالیت کنم تا این که منم مجبورم دوباره رفتم خدمت و حتی نتونستم فعالیت درست با این تصوی برنامه ها رو ریفته بودم واسه دوران خدمت هم اونم هم متاسفانه اونا هم همینی نشد درست و این وفعه و این وفعه افتاد خب همونطور که حالا شاید خویتم بدونید موضوع اصلی برنامه ما در مورد فیت خارجی هستش همکاری های که بین ربکنه های ایرانی و ربکنه های خارجی انجام میشه. و با توجه به اینکه خودت توی ترک کلیشه این تجربه رو داشتی و با کیم کروکت فاعلیات کردی باستون خوب دلی خوبی میشه که با خودت هم صحبت کندم به این ترک کلیشه اصلا چی شد که این ترک ساخت و پرداخته شد و چی شد که به این همکاری رسیدیم کم در مورد کلیشه برای اون توضیح میدیم ترک کلیشه ترکی بود که مسلمن زحمت زیادی براش شد. همه زحمت کشیدن یعنی همه کسایی که تو اون ترک نفش داشتن و خوندن و یه سیگه عوامل خارجی و اون ترک رو جمع کردیم با کین که فیل کنم یکی از رپرای خیلی با ریسپکت توی مارکت در گیرن در امریکا باشه و توی کمپانی خیلی خیلی خوبی عمل هم داره فعالیت میکنه و توی گروه خیلی خیلی, خیلی خوب هم باز هم داره فعالیت میکنه و همینطور فعالیت های دیگه خودش داره زیر زیر زی نظر خودش داره فعالیت میکنه خب تاکیل کلیشه اومد یه سری بازخورد های گرفت مخصوصا تواله توی فضل رسانه های خودمون میخواییم در مورد اون بازخورد صحبت کنیم به نظر خودت اصلا چه تأثیری روی در درجه اول روی فضل رپ فارسیمون گذاشت اصلا تأثیر گذاشت اگه گذاشت چوری بود به نظر خود به موند کسی که داشتید بیرون این قضیه رو نگاه میکردیم تأثیر تأثیر مثبت من بیشتر دیدم، حالا از لحاظ داستانی یه سری داستانها که الله کار دوزی پخش کردن منافی زدن و دیشب هست، همیشه هستند. ولی تأثیر مثبت من بیشتر دیدم چه داستانی چه حالا از تأثیرش رو را به فورسی خیلی بس. کامنت های مثبت از طریق مخاطبا و کسایی که داشتن فعالیت میکردن توی حالا کسایی که واقعا دفه بودن یا تصمیم برای کار داشتن بس. بس. به نظر من کار خیلی خوبی بود و من فیدبک مثبت بسیار زیاد از این کار گرفتم خب حالا یه انتقادی هم که حالا خیلی از مخالفای این قضیه بهش داشتن ایشکا میگفتن که این دست موزیک ها مثل کلیشه تاثیر خاصی روی مارکت خارجی نمیذاره و نهایت تاثیرش روی فضای رپ فارسی خودمون به نظر خود اصلا این وضعه تاثیر تأثیر میذاره نمیذاره اگر میذاره چجوری به نظر من که آره روی مارکت خارجی تاثیر بسزایی سزایی نمیذاره نه مطمئنا نمیذاره چون ما توی ایران هیچ چیز کاملا استانداردی نداریم یعنی نه کنپانی درستی داریم نه قرار دادی امزا میشه برای بستن کار کارو نه یک تیم خیلی نوی میاد این کار انجام میده. هیچ چیز درست و استانداردی بشتش نیست متفایدن توی فیدبک خارجی ما چیز خاصی نمی‌تونه بگه اما تاثیرش بر رپ فارسی همونطور که گفتم 100 درصد تاثیر داره چرا چون که ما وقتی در کنار یه رپر بین المللی قرار میگیریم مطمئناً سنجیده میشیم مطمئناً فرق ما با اونها دیده میشه آیا ما به اون استانداردی که اونها الان دارن نزدیک هستیم یا نه اون فکری که ما از اون تصویری که ما از رپ فارسی تو ذهن خودمون داریم آیا واقعی هست یا نه این پیتای خارجی اینو بیشتر گل می به میده و نمایش میذاره به نظر من که این آه... کار تا حدی حد حالا من نمیتونم از فرم تعریف کنم تا حدی انجام داد خب حالا خودت با اون یک از آرتیسه که تو کلیشه حضور داشتی بعد از کلیشه شد که مثلا واکنیش از طرف حالا یک مخاطب خارجی ببینی حالا در حد حتی یک کامنت یک صحبت اضافه شدن یک مخاطب چیزی بود واقعا واقعا بود چند تا کامنت چند تا دایرکت خارجی حتی توی سری سایت‌ها کامنتایی اومد من دیدم همه‌شو پیگیری می‌کردن آره بود خب همین به نظرم خب می‌تونه یه قدم خیلی مثبت باشه دیگه چون ببین همیشه افرادی که شاید شروع کننده یه قضیه باشن سوخت بدن اصطلاحاً نتونن به اون درجه اصلیش برسن که حقشونه صد درصد صد صد در صد, صد همینطوره کسایی که شروع می‌کنن میشه بار بیشتری رو به دوش بکشن اه... قبل از اینکه حالا این مصاحبه رو شروع کنیم باز هم بررسی کردم یه تا خیلی خوب دیگه هم که افتاده اینه که توی مدت یک جریانی را افتاده و با شده که کار آرتیستا ها آرتیست خودمون روی صفات بین المللی مثل آیتونز قرار گیره از خودتم دو تا کار روی آیتونز قرار گرفته توی مدت یکی ترک ترسیم و یکی هم ترک آهسته تر حالا جدا از این کلیشه که مثلا از قبل آیتونز داشت به نظر خودت این دست اتفاقات تاثیر مثبت میذاره یا مثلا باعث میشه که ما بتونیم یه آغاز استارتی بزنیم برای اینکه خودمون نشون بدیم محکم بزنیم خودمون رو مثلا مخاطب خارجی جذب کنیم بنو 100 درصد درصد این هم تاثیر خواهد داشت و برای شروع بسیارش خوبه تا ما بتونیم استانداردا رو دوباره تاکید بکنیم اون استاندارد های اصلی که تو کل دنیا الان مد قرار میگیره رو ما انجام بدیم اگر چه شاید در آیندهم بتونیم ما به استقلالی در این مورد برسیم چرا کشور ما خیلی محدودیت ها هست حالا ما باید با هی در نظر گرفتنی سری از محدودیت ها اونا رو باست خودمونم تربیه کنیم و ترایی کنیم این باست شروع خیلی برنامه خوبیه حالا اینم نگفته نماند که ما فکر نکنم کسی به اون صورت روی آیتونز دانلود و فروشی داشته فرو و با عنوان آخرین بحثمون توی هیته تخصصی تری که داریم در مورد هیته خارجی صحبت میکنیم بجز ترک کلیشه ما همکاری های دیگه هم داشتیم بین رپکانه های ایرانی و رپکانه های خارجی که شاید شاخصترینشون همکاری یاسو تکنا یا همکاری لیبل ملتفد با کلژی رپ باشه با عنوان یک آرتیست خودت این دست همکاری رو چطور دیدی؟ راضی بودی ازش؟ ب <تصفيق> مطمئنن این همکاری ها خوبه بازم دوباره دارم تکرار میکنم همکاری یاس با تکنانگ همکاری کامولا هرفهی بود یعنی همه چیزش به نظر من باید تیم کامولا هرفهی انجام شد کار کلیپ شد و توی کشور دیگه کلیپ شد و رسانهی شد کامل در موردش صحبت شد خود تکنان در موردش صحبت کرد این کار واقعا هرفهی بود گرچه خود ترگ زیاد از نظر من الفی نوچه از لحاظ موضوع چه از لحاظ حالا کندن یاس حالا نمیخوام نقدی برای یاس بشه <تصفيق> ولی اون کار کوجی و ملتفت رو هم خیلی دوست داشتم مخصوصا من خود کوجی رو خیلی خیلی دوست دارم خیلی کاراشو دنبال میکنم و واقعا اثر بزرگی داره شوک رو پاسی قائل هستم اون کارم از لحاظ بار مفهومی و تکنیکی تا حدی خوب بود اونم واقعا قبول مم. به نظرم نتیجه خوبی هم داشت افتش. خب برای کارکتر حامد اسلش کاراکتر آرتستید توی سال جدید چه برنامه‌ای داری و یه توضیح خیلی مختصر در حدی که می‌تونید در مورد اهداف و برنامه‌هایی که توی مدت می‌خوای دنبال کنی درآوردی اگه لطف کنی برای مخاطبات راه بیتی. توضیح مختصر از سوال هستش نمی‌تونم من علیه چی این گجت‌ها تو دست دارم که اونا همش تقریبا آماده هستن و منتظر اون برنامه‌ای که واسش چیندم هستم توی زمان و ساعت مشخص خودش پخشش کنم و حالا بدون حرف پیش در حال کاند هستم و آلبوم هستم و قول نمیدم که توی امسال بتونم پخشش کنم نمیخوام حرفم دو تا بشه ولی میخوام که اولین مجموعه رسمی خودم رو به صورت سینگل و تنها ببندم و خدمت شما دوستان عزیز برایه بدم بلا زمانش ولی مشخص نیست تو خیلی هم عالی شده که معفق باشی و به عنوان بحث آخر هر صحبتی و مخطبها داری در خدمت اسی صحبت خاصی نیست همین که فقط هیپ هاپ اصلی رو مخاطب و دنبال کردن و درگیر یه سری چیزهایی که به اسم رپ یا به اسم میگه واقعا ارزش میشه اصلا نشن امیدوارم یه روزی دانش هیپ هاپ اونقدر ایران بالا بره که نیازی نداشته باشه که یه سری از ماها تنها هدفشون این باشه که دانش رو رواج بدن و ما اصل هیپ رو بتونیم رواج بدیم و فیدبک خوبیات بگیم باستابی رو که باید بگیم ما بتونیم بگیم پس شما واقعا تشکر می‌کنم ممنون از اینکه وقتو در اختیار ما قرار دیدی خدا نگهدار خداست <تصفيق> سر en nu zijn de boetes er een jonge, geen janko, jij denkt op brasput. Je potteren staat als ik hier niet op vastgoed. Wacht is shadow, je sachput. Wacht je testput. Je moet test, ik wil het je testput. Aan de hele daag, je testput. Kij jank, je doet, je de force, maar nog veel moest daar ik beharst. hard بعده شکست مرک بعد پیروزی درست بود کم فروخترین دوره اعتراض تو همین دهه نس بود بای که چقدر این دوره بد بود تو دل همه پر درد بود رنگی که مونده بود به روح سار زرد بود چشام به درد بود چون خونه بدون مرد بود خب مصاحبه با حامد و گوشت دادیم میایم به به دومی که همیشه خودمون صحبت میکنیم بگرد این بخشش الان فیکش می‌کردیم که چه مسئله‌ای رو با هم صحبت کنیم گفتم خیلی خوبه که از این فرصت استفاده کنیم از این تریبون استفاده کنیم و یه یادی هم کنیم از آرتिस्ट‌هایی که یه زمانی توی این مارکت بودن فعالیت کردن حالا به هر نحوی جدا شدن به حقشون نرسیدن و صداشون مون یه بیشتر به حق خودشون رسیدن و تو یه جایی آره, آره... مسئله توج دا فیزیک بستگی داره آره خیلی اعد بودن که تلاششون رو کردن شاید شنیده نشودن درسته ولی خب به هر حال تو این زمینه حالا خواهم اسم بریم شاید یکی از اولین افرادی که ذهنمو میاد بابک تیغ باشه بابک تیغ کسی که توی زمان خودش که از اولین افرادی بود که اجتنا نکردم بحث بحرطویل رو برات رپ فارسی کرد توی آلبومی که داد و هم از نظر بوده تکنیکی، هم از نظر بوده مفهومی که مخاطبش ارائه میداد. توی یکی از بالاترین سطح‌های خودش کار کرد. اینوز آلمانیه یکی از بهترین آلمانیه که من تو رپ فارسی. و, و اگه توانا کنه مختریم با لیودی دیوار رو داشت همکاری میکنه با بهرام یه همکاری با سامت داشت همکاری با سامهت همکاری کرد. با سامهت همکاری داشت. ولی خب متاسفانه یهو جدا شده از این قاضی. اصلا قاضی چی می‌دهی؟ یه سری اولمال پیشومات که حالا با وقت زدن یه شخصی خودش رو تحسین می‌ بیزنسمان خیلی هرفهی تا جایی که من اطلاعاتم شد اطلاعاتم غلط باشه یه تا جایی که من اطلاعات دارم یه بیزنسمان خیلی فوقلاده است توی کار خودش و یه سری بیمهری شد نسبت بهش از سمت یه سری آدم که تصمیم گرفت که دیگه کار نکنه من اوجه این رو وقتی دیدم که اگه یادت باشه یه مستندی سال پیش ساخته شد و بابک تیقه توی درده پنگ دیگه دهقه توی مستند اومد من صحبتاش خیلی عجیب بیدن آره صحبتاش, صحبتاش باعث شد <تصفيق> که همه بچه های ایپاپی جا بخورن یه جورایی ولی خب من یه بهش حق دادم شاید آسیب روحی که اون توی اون مخته خودش از اون فضا دید و بگواری تو بیمهری که دید شاید هم بگواری یه پارتی از صحبتاش درست بود هیچ کدوم از ماها همه کشورمونو دوست داریم همه ام. تو جایی که داریم زندگی میکنیم دوستش داریم هیچ بلای دلمون نمیخواد سره هیچ نظامی بیفته و از این صحبت ها. اول خوب یه ذره صحبتا شوکه کننده شده بود که انقدر مستقیم داشت صحبت می کرد. مثلا حالا استالی هم که داشتش استالیم داشت که آره هم فهمیدم. خیلی جالب نبود این پاپیتورین. مثلا کسی که با وقتی یکی از افرادیه که وقتی کار میکرد جوز لباس اولین اسای و اصن چالش من هر چند وسشم کلیپ خیابون رو می‌دیدم. مثلا آفرین. استایلی که داشت لباسه که پوشیده بود هنوزم نیستش توی فضا رفت فارسی. اصن واقعا فوق‌العاده بود. دیزر. از بابکتیقه اگه بگذاریم میتونیم به یکی کف کنم رپ انتظایی ما خیلی حق به گردنش داره بنیامینه به نظرم مم. و من خیلی خوشحالم که بنیامین هم چند ماه پیش سینگل داد ببینیم بنیامین یه جورایی هم میتونیم حتی لقب پدر رپ فارسی رو بهش داد <تصفح> چون الان خیلی از آدم هایی که دارن کار میکنن استارت کاره اولیهشون با بنیامین بود مثل علی سورنا مثل ام. بامداد مثل فرشاد صوت صور یه جور شاید بنیامین استارت نسل جدید یه نسل تاریخ جدی که تو همون تلگرام خیلی از افرادی ده. که الان داریم توی نسل سوم می‌بینیم که دارن کار می‌کنن خیلیشون شاید شاکل اصلی ذهنشون از بنیامین گرفته از بنیامین و کسایی که بنیامین تربیت داد توی رپ فارسی رو جا دو حالا اگه بخوایم یک کم بریم سمت شاخه‌های مینستر یک مثل امیرعلی ایتو هم شاد طبعا امیروالکتی ما نمیدونم قضیهش چیه؟ یه مختهی فعالیت کرد بود؟ الان میاد تو آلبوم تیک تاک دوباره میره الان خبری ازش نیست. چرخه رسانه ای گیر کرد و متاسفانه تا مطمئن نشد که اون اتفاق نابود نشده <تصفح> دیگه تصمیم گرفت کار نکنه. و الانم نه پیج اینستایی داره نه فاز اون آلبوم خیلی آلبومش اکبرانگیزه. دوستایی گفت اصلا این وکالا قلیمیه. حالا من نمیخوام اصلا نظری بدم و فکر نمیکنم اینم درست باشه. آخه فکر نمیکنم درست باشه چون تیزه تیزری که برای چش تو بوند ساخته بودن خودم ریلی تو حضور ولی خیلیم انتقاد شد خیلیام گفتن شاید استایلش به مرور زمان تغییر کرده ضعیف‌تر شده ببین هر کسی که میره برمیگرده این انتقادات حساب بهش میشه نسبت بهش انجام میشه مثلا سامون ویلتون که اصلا بگم سامون وقتی که داشت فعالیت میکرد گنگستر بود چه زمان خودش رفت بعد 8 سال ما نمیگیم الان ضعیفه الانم خوبه ولی خب حالا دیگه شاید اینقدر مستقر نمپاسه je moet ook een dat het, maar het niet doen, ik ga het niet niet doen, ik ga het niet niet doen, حق بگردن گردن فارسی دارن بخوام ازشون انتقاد بکنم با چون بالاخره خاطر زحمتشون کشیدند زحمتشون رو کشیدند و هیچ کسی صحبتی نمچونه درو رشون بکنه بجز کسایی که تو گودن مم. و یکی دیگه از افرادی که تو یک مقطعه فوق بولد بود و الان کم و بیش با ایسری سینگل برگشت علی ساجی ماس ایجیس ساجی ماس اگه اشتباه نکنم تقریبا یک سال پیش بود یه سینگل داد که ویدیو هم کرد درست. ولی ik heb het niet geprobeerd, ik heb het niet geprobeerd, ik heb het niet Ik heb het geprobeerd. Ik heb het geprobeerd. Ik heb het geprobeerd. heb Ik heb het geprobeerd. Ik Ik heb het geprobeerd. heb Ik heb het geprobeerd. Ik Ik heb het geprobeerd. heb Ik heb het Ik heb Ik heb het Ik heb Ik heb het Ik heb دیگه مثلا ما میایم ریپوست میذاریم از آفرین مثلا ما میایم ریپوست میذاریم از افرادی مثلا علی ساچمه از افرادی مثلا بابک تیقه بعد کامنت میبینی گفتم آقا این کیه اینو چه کی دارین گندش میکنید آقا اینا رو گنده نکنید یه <تصفح> مشهرش... موقع حسرتیه که به ماها میشینه که این آدمای زمانی خودشون شور و هیجان تزریق میکردن به رپ فراسی. مخصوصا علی ساچمه فرضوش که نوادری خیلی خاص تو استایل داشت تو استایل تو فلا ولی خب متاسفانه نشرت نمیدونم واقعا کمتر میتونیم از این دست افراد استفاده کنیم توی فضل مارکته خب حالا در مورد این دستان کامنت ها هم صحبت کردیم از بحثش دور نشیم علیه حالا خودت مواجهه شدنه با این دست کامنت ها رو برای هم ببین اصولا افرادی که توی فضل رسانه کار کنن از این دست کامنت های عتیق خیلی دیدم و هممون خاطره داریم از این دست کامنت ها و مخاطبه های که ا عشقان فکر کنم وکال نمیدونم فکر کنم وکال کج بود که وکال کرده بود نیما ویدیوی عشقان گذاشته بود و همه فکر میکردن که این نیماه <تصفيق> ما یه سری پوست های عزیم غیب که رسانه ها ویدیوی عشقان رو اسم نیما داشتم پخش کرد <تصفيق> آره من واقع نمیدونم راستانه ایچی سنتیه ما خیلی داریم برمیگرده به این که ما هیچ منبع رسمی نداریم هر کسی به خودش اجازه میده که رسانه بشه حالا من از جالب بارد بگم چند روز پیش خبر اومده بود که دارا کلاهی به معنی عضو جدید پایدار انتخاب شده maar ik ben niet eens naar Channel 3, maar we zijn op Havarok. Je kijkt is channel 2, maar je kijkt je channel 2, maar je kijkt je channel 2, maar je maar je kijkt je channel 2, maar je kijkt je channel 2, maar je kijkt je channel 2, maar je kijkt je channel 2, maar je kijkt je hij was al een tijdje aan het werk. Hij is een tijdje aan het werk. Hij is al een tijdje aan het Hij is al een tijdje Hij is al een tijdje Hij is al een حالا من به تایپ طرفدارشون کاری ندارم کیاست نمیدونم اینه کجای ندیدمشون تا حالا اینجور آدمها رو شاید به خاطر نوع زندگی منو لایف استاین بودن ولی داستان اینه که <تص> اونها حداقل وقتی کاری رو پخش نمیکنن با وقتی کاری رو پخش میکنن با کامنت‌های بد مواجه نمیشن سبب نمیدونم این چه قاضیه یه ما وقتی مخصوصا مخاطب خود اون هیپاپیا وقتی با یه قضیه مخالفی فوش میدیم انتظار نمیکنه حالا ببین اون رو بیشتر میشه به نوع کلماتی که توی اشعار استفاده میشه مثلا انگار می یه جور تاثیر ده بودنونه بودن آره و خب ما فیک نمیکنیم به این که مثلا یه کامنتی رو میذاریم و احساس میکنیم که خب حالا این کامنت میره نمیبینه آرتिस्ट شاید ولی <تصفح> خب آرتिस्ट به عز اون یه کامنت منفی هم که میگیره شاید یه فیدبک بد بهش بخوره فیدبک بد بهش میخوره همین دل شدن ها بعضی مواقع از همین جاها نشات میگیره چند وقت پیش اصالاً خود رزرو تسلا به خاطر یه سری مشکلاتی که پیش اومده بود گفت یه مجموعه پوژه‌ش جای مجموعه شه بخاطر یه سری درگیریایی که پیش اومده بود با یه سری آدم‌ها ب... البته حالا رز تسلا محترم و بحث شما واقعا به شخص درک می‌کنه ولی گفتی خدافزی از این دست خدافزیام خیلی داشته اون خدافزی بنظر به نظر این خدافزی از همین جهان اشعث می‌گیره همیشه غالباً یک واکنش احساسیه دیگه آرتستیه که یک سری کامنت‌های منفی داره می‌گیره قدر کارش رو نمی‌دونن یک تسلیم می‌گیره و یهوف شرعت برمیگرده همون افرادی که برگر آقا چرا برگشتی محمد حمزه همین اتفاق میفته و جالب میدونید چیه اگه اون آرتتیست برگرده کامنت دوباره برگرده آقا برچی چی برگشتی نگفت خدافظی نکرد دقیقاً این اتفاق بارها من مرور می برای بیگرز افتاد برای محمد حمزه افتاد برای رضا تسلا افتاد اول میان کامنت منفی میدن آرتتیست خدافظی میکنه کامنت خوب میدن وقتی برمیگرده برچی چی برگشت آقا میگم اصلا خدا... این نیست آره ایناستون خیلی میشن بخدا ببین دستای نمیخواد که کار بعدی رو منتشر بکنه صد در صد وقتی که داره حالا هزینه هاش به کنار که هزینه ها صد درصد برای آرتیست همونه که برای افرادی که تازه کارن همیشه همونه چون استودیو منبع درامدی یک آدمه <تصفيق> پخش منبع درامدی یک آدم رسان منبع درامدی یک آدمه ببینده حالا صرف نظر از هزینه که همیشه وجود داره اینرژیی که داره میذاره، وقتی که داره میذاره، و واقعاً توی رپ فارسی حالا چند وقته که الله ای من به دراماتی به اسم فروش به وجود، که اونم ده. هنوز، که آنچنان... اونم الله یه چیزیه که خیلی از دل خوش کن نیست با تو خاطر که سعیم دریچه صحبت کردیم درد شروعه یه نهال تازه. آره داستانیه که اون آرتیست وقت گذاشته و خودش رپای اون کار گذاشته و واقعاً اشغلت که مونده باشه اون. داستانیه که نباید به نظر من این کار رو انجام بدن کامنت فوش بذار آقا اصلا خیلی عزم میخوام تر زدی با این کارت خب می‌دونید ما باید اینم در نظر بگیریم که ما واقعا یه خانواده‌ایم می‌خوامندن که با دکاره هم کار بکنیم خانواده هیپ هاپ توی محدودیتیم همون باید کنار هم باشیم و معمولا به این بعد زاویه این قضیه نگاه نمی‌کنیم خیلی جهات به جن که کنار هم باشیم روبروی هم قرار می‌گیریم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 حال نسل بندی هم که واسه هم قرار قلتی که کاری نهاری نسل بندی <تصفيق> <تصفيق> کسی که تا الان حد اقل هفت سال هشت ساله که دارن کار میدن باستان اینه که از همه چیشون گذشتن بعضی جاها برای این کار و الان فقط خودشونن و یه تعدادی طرفتار پس این کار به نظر من حتی اگه طرفتار نباشن خیلی کار قشنگ و جالبی نیست خب این بحثمونم به اتمام رسید بریم سراغه قسمت دوهای مصاحبه, دو مصاحبه که در خدمت عشقان. عشقان هست بریم و. بریم میدونم میخوای بری 100 درصد گل وجودت تا کی رفتن پنهونش نکون دیگه ندارم با کی از اولش اشتباه بود گره هفته بود کنار رد بمک کار کاغذ من کات دست خوشت گناهات با اشکات تر شد دود گناهات با اشکات تر شد از هر چی که بود و نیست اشکان رخت هر چی که بود و رفت و خب میرسیم به مصاحبه دوم و دوباره مصاحبه دومه من با عشقان خیلی خوش میمدین به مصاحبه یک زد با زیر زمین قسمت دوم عزیز زمین چه خبر ها؟ اه... اولا دروز خدمت همه کسایی که دارند این اه... مصاحبه این گفته گروه میشنمن دومن راجع به اینکه میگی چه خبر ترجیح میدم که یه شعر بخونم بیرون آزادم بچا از خوشنگ <تصفيق> ابتاج هر قبان شاخه ام خون جدا مانده من آسمان تو چه رنگ است امروز آفتابی است هوا یا گرفته است تنوس من در این گوشه که از دنیا بیرونه است آفتابی به سرم نیست از بهاران خبرم نیست آن چه می‌بینم دیوار است آه که این سخت سیاه آنچنان نزدیک است که چو بر می کشم از سین نفس نفسم را بر می گرداند ره چنان بسته که پرواز نگاه در همین یک قدمی می ماند کرسویز چراقی رنجور به پرداز شب ظلمانیست نفسم می گیرد که هوا هم در اینجا زندانیست خب علی جان در خدمتم خب مرسی که اول دعوت ما رو پذیرفتی بابت این که تو این برنامه حضور داشته باشی عزیز قسمت دوم همونطور که اول هم داشتی گوش میدادی در رابطه با همکاری بین مللی یکی تا حالا توی رب فارسی انجام شده و حضورت هم بی علت نیست Mentegioeromachaar, daar zou ik niet gaan, maar zeg maar, ah, leha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, Maar ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, is ha, ha, ha, ha, die ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha,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 جوزام کوتاه بودنش بیشتر ببین ما یه یه قالب ادبی اصلا داریم داستان کوتاه خب ما میایم اصلا یه چیزی که هست اینه که آقا شما مثلا قطعه کوله پوشی قطعه کویر چی تو ادامهش میخواید بگی این اولین نکته است یعنی کاملا اون چیزی که باید گفته میشد گفته شده خب تموم شده رفته من خودم به شخصه اون جوری که بر فرض مثال مثلا جوز ساراماگو مثلا میاد مینویسه رو ترجیح میدم تقریبا به اون چیزی که مثلا هاین ریش بل مینویسه مم. زیاد وارد جوزیاد نمیشم چومو اصل داستانمون رو می‌خوایم بیان کنیم فرصتی هم نیست. این یه نکته، نکته دوم فکر میکنن که کوتاهه. خب در صورتی که مثلا بر فرض مثال قطع النقاب دو تا ورس 16 بیتیه. خود کویر 16 بیت 16 بیت میشه دو تا هش بیتی یعنی دو ورس میشه. خب درست. یا کولهپوش 12 بیته که میشه تقریباً یک ورس و خورده ای اگه اینجوری حساب کنیم خب و این لازمه اش اینه که بیشتر مثلا توجه کنم به این داستان خب اون چیزی که دیده میشه صرفا قرار نیست حقیقت داشته باشه جد از بحث کوتاه بودنش در چه ادامه مجموعه بیرو هست بیرو ما خب ما یه ای آدم اینو توش میبینیم خب این زندگی شخصی منه اصلاً بابی ندارم از این که بیانش کنم ما یه آدم میبینیم که مشکلات زیادی توی زندگیش داره داره با این مشکلات دست و پنجه نرم می‌کنه میاد راجبشون صحبت می‌کنه از کودکیش تا اون سنی که بیراهه رو منتشر میکنم یاد راجع به استوابت میکنه و دقیقا شب پخش بیراهه من تمام اون مشکلاتو گذاشتم کنار همه چیزی که داشتم رو گذاشتم کنار و این تغییر رو توی خودم اول ایجاد کردم چون ما وقتی میخوایم توی جامعه مون تغییر ایجاد کنیم باید از خودمون شروع کنیم و من این تغییر رو توی خودم ایجاد کردم حالا با اون دیدگاه میام ادامه داریچه دقیقا از قطعی هنوز شروع میشه یعنی داریچه خود قطعی داریچه یک کلیاتی اوره هنوز به امره اومده setSearch یه کلیاتی دریچه میده بعد تو هنوز دقیقاً اونجایی که میگم دروغ محسن غرور تنزت دریچه باز میشه و به مخاطب میگه که این ادامه بیرا هست این ادامه اون گذره وقته و هنوز زیر پاهم له میشه هر دفعه اسفورت درست خب حالا یه ذره بیایم بعدتر از دریچه به تبع هر آلبومی تریکی پخش میشه و آرتتیست منتظر از نظر مردمه راجع به انتقاداتی که بهش میشه، تشکراتی که راضیه ما جوابش میشه. در کل راضی بودی نسبت به دریچه جان؟ خب ببین زمان میبره تا یک مجموعه به بار بشینه. آره، با درک بشه. این خیلی مهمه. ببین ما الان تو تاریخمون نگم هفتاد سال فکر میکنم از فوت صادق الهیات گذشت. تازه داره تازه داره درک میشه. خب و ببین ما یه چیزی داریم. خب من خیلی به این موضوع تو این چند وقت فکر کردم. ما نباید انتظار داشته باشیم از مردم عامه یا حتی اصلا مردم کلا از جامعه ای که به صورت عادی فقط به صورت م... یعنی به عنوان مخاطب دارن یه چیزی رو دنبال میکنن ما نباید انتظار داشته باشیم کتاب سرمایه رو بخونن نه کتاب منیفست کمونیست رو بخونن اینو من باید بخونم به عنوان کسی که دارم تو جامعه با هنر رو یعنی هنر رو دارم با رو میدم من باید بخونم درچ هم همینه این نو no. ببینید شما مثلا نگاه کن بزرگ علوی قلمش رو به شدت من قبول دارم خب بزرگ علوی رو من به شدت قلمش رو قبول دارم و میام بررسی میکنم که مثلا بر فرض مثال احمد محمود رو وقتی میخونم میبینم که آقا احمد محمود اونقدی که باید بزرگ علوی به بشینه نمیشینه دلیلش چیه؟ الگوی احمد محمود بزرگ علوی بود <تصفيق> خب بزرگ علوی بوده که احمد محمود رو متولد کرده <تصفيق> و من سعی میکنم نسل بعدم رو متولد کنم <تصفيق> خب درست پس در کل هنوز اون فیدبتی که میخواستی از دریچه رو نگرفتی ولی راضی بودی راضی هم که کم کم داره درک میشه و این خط داره گسترش پیدا میکنه بین حدیقا همکارام اون آلبوم جدا از بحث اینکه که مخاطب باید درکش کنن بیشتر همکارام چون یه فراخانه واسه همکارام من دارم یه فراخان میدم که بیاید با همدیگه ما باید صده برسه به گوش مردم و از این وضعیت اصفناک هیپپپ و از زمانی گذر کن. خب برو صحبت راجبه اینها فکر کنم تو یه پادکست یک رو خیلی بیشتر باید راجبهش صحبت بشه این یه حالت آسیب شناسی هیپ‌هاپی داره در تا دا این که بخوایم راجبه همکاری بنور مدلی صحبت من ده. یه نکته میونه حرفت بگم ببین یه, یه نکته‌ای که هست خب یه چیزی بد جا افتاده من اینو حتما باید عنوان کنم ادید. یه چیزی بد جا افتاده ما فکر می‌کنیم هر کسی فاستر میخونه بهترین رپر دنیاست هر کیز تونتر بخونه برنده است اشتباهه آقا ما هفت تا نوت داریم <تصفيق> چارلا چنگ هفتا نوته دوست عزیز من ت... به جز نوت چارلا چنگ به جز چارلا چنگ رو تمام نوت همی هم منور میدم واقعا این باید بررسی بشه خب حتی تو سللا چنگ رو ما داریم میبینیم من تو قطعه نقاب میزنم ببین داستان اینه که مخاطبهای ما خیلی دنبالی نیستن حتی زیرزمین ما بیشتر داره بازاری میشه متاسفانه به دلیل سیاست های برخی دوستان عزیزمون در ایران و حتی خارج از ایران روست که حالا بگذاریم دربارش آقا بحث امروز ما در باره همکاری های بین المللی همونطوری که خدمات ارز کردم دوبار شما یه همکاری بین المللی داشتی به همراه نیمو نیموش عزیز حامد اسلش و آقای مجازی به همراه کروکت آی اوف از اسلاتر هاوس اوف الشهید ريكورد که کارنامه درخشانی داره 6 ماهه 4 تا ای پی میده، سالی 300 تا ال پی میده. و میشه گفت معنای دقیقه هیپ هاپ یه جورایی به نظر خود من که همش در کنکاشته که حالا باید چیکار کنیم؟ چیزی برداشت شخصی من از کورکد آیه حالا به هر شکل نظرت درباره همکاری‌های بین المللی چیه؟ آیا این ربمند کمک میکنه به رپ فارسی من طرف به خود رپ فارسی فکر میکنم نه به جهانی شدنش به خود رپ فارسی صد درصد کمک میکنه خب چون مقایسه صورت میگیره من در کنار کروکده های میام یه فعالیتی رو انجام میدم زعفاش رو میشنسم میدونم تو واجهاره یه شین زعیفه خب ضعف‌هاشو خوب می‌شناسم. میدونم می تو چه زربای زعف زربایی ضعف داره. ذربایی که ضعف داره رو قوی اجرا می‌کنم. واجاری شین می‌کنم. خب و این قلقلکش میده تو کارش. اونم واجاری دیگه‌ای رو بیاد انجام بده. و جدا از این بس نزدیک شدن خط فکرا با هم دیگه است. چیزی که دو ماه بعد از پخش نمیگم از من تأثیر گرفته ولی میگم چرا خط فکران از اینکه دو ماه بعد پخش کلیشه من می‌بینم رو پیج اینستاگرامش کتاب معرفی می‌کنه. خب این این خط که باعث همسو دقیقا همین همینطور یعنی یک ما نباید نگاه دنیا کنیم کجاییم ما وسط یه دهکده جهانی داریم زندگی می‌کنیم دقیقاً همه بسانی که کیشه‌ داره لوجریست دقیقاً داره ما نزدیکیم به هم دیگه واقعا نزدیکیم درد مشترک تجربه های مشترک داشتیم اونها آندرگراوندن ما هم آندرگراوندیم و جدا از این بس اگر بیایم بررسی کنیم میتونه کمک کنه به خاطر این مقایسه خب شنونده میاد تکنیک جدید رو درک می‌کنه می‌فهمه که استاندارد بودن حتی یعنی چی و خب توی شناسوندن هیپ هاپ به جامعه بین‌المللی هم بی بی‌تأثیر نخواهد بود. وقتی میاد به زیر پاست مثلا میذوسه داپ خیلی خفن. حال کرده. واقعا من ندیدم همکاری بین‌المللی اینجوری باشه که یارو بیاد حال کرده باشه مثلا با کار خودش ارتباط برقرار کرده باشه. خب ببین من فکر کنم تا حالا نزدیک 20 تا حداقل همکاری بین‌المللی توی رپ فارسی شده. ولی ام. چند تا همکاری بین‌المللی هست که یه جوری بولتر مثلا خود بنیامین فکر Piska, we weten niet dat je hem om Als de Russe-de-vrienden hebt, het Sársjön, de Amrika, de Almond-karnetje, de Velivo, dan is het een standaard-haar, een Iran-karnetje, een Mess-karnetje, een het al, het al, je hebt het al, je het je و ما یه سری همکاری بین‌المللی داریم که الان یه ذره بلترن مثل همکاری حالا شما با کورکدای یا از اونور همکاری یاس با تک 9 و همکاری مهدیار آقاجانی و کوجیرف نظرت راجع این همکاریا چیه بیشتر حالا اه... کاری خودتون ندن نمیتونی روی کار خودتون دست <تصفح> بزن <تصفح> نظر بدی که وظیفه مخاطب درسته ببین اه... یه نکته خیلی سریع بگم ازش رد شم ما همکاری بین المللی وقتی می‌کنیم اولاً باید نگاه کنیم ببین که اصلا با ما... من بر کاری نداره با مین استریم ها کار کردم اصلا مست من کاری نداره چون با همه همشون کانکتم میتونم ارتباط بزنم راحتام کار بدم نمیدونم باشون چون اصلا ما, ما تو مارکت اونور نمیتونی مرزندون کنی مین استریم و تا زبانی که زبانی ما نمیتونیم ارزیابی کنیم یه زمان ب... زبان بین‌المللی و دو اینکه ما خودمون مدیا رسمی افشال نداریم خب 100 درصد همینه که امیدوارم حالا ایجاد بشه در آینده ان ولی ما نمیتونیم ارزیابی کنیم ببین همکاریایی که صورت میگیره با آندرگراند ها خب باعث میشه که اعتبار رپ فارسی بالا بره خب من وقتی با یه اندرگراند کار میکنم اعتبار من میره بالا و اعتبار به طب خب ارتبار رپ فارسی میره بالا از یه سمت دیگه همکاریایی که صورت میگیره اگر به بنویی باشه که خب ببین کار من رو ببین انقد فیدبکش گسترده بود یه مثال بزنم فیدبک یعنی این نمیخوام تعریف کنم خب ولی فیدبک یعنی این که ریکنایز میاد منو فالو میکنه رو توییتر خب ریکنایز از دست یه استرنج موزیکه چرا منو فالو میکنه کار من شنیده در که در کنار کوروکدای که باشتر کار میکنه میاد منو فالو میکنه خب این یعنی اینکه کار من توی جامعه بین‌المللی بین رپرها شنیده شده و اعتبار من بالا رفته چیزی که ما شاهدش حد نبودیم خیلی از جاها تو خیلی از همکاریا شاهدش نبودیم به نظرم باید خیلی اصولی تر این قضیه صورت بگیره یعنی نه اینکه یاکوپلای خریداری بشه یه بیز زده فایده بشه نداره آه آه آه نه واقعا فایده نداره چون تو داری ارزای خودت رو ارضا می‌کنی من من پیگیر داری, داری با اسه خودت اعتبار, اعتبار می‌سازی من تو انتخاب همکاریم هم به رپفورسی فکر نمی‌کنم به خود. سلیقه شخصی خودم فکر می‌کنم که زندگی من بود یه دوره من کارش گوشه من سلیقه شخصی من توی نوع انجام اون همکاری فقط برات رپ فارسی فکر می‌کنه یعنی اصلا منافع شخصی خودم فکر نمی‌کنم دوست دارم رپ فارسی پیشرفت کنه دوست دارم رپ فارسی تو سطح بین‌المللی شنیده بشه صدای خفه ما تو این جامعه به گوش اونوریا برسه که چهار نفر نتونم بگن پس فرده تو تاریخ بیام بررسی کنم بگن فلانی و فلانی نمادای باپ بودن درصدی که نه, است، نه استانداردن نه ایده درستی دارن نه ایدئولوژی درست نه اصلا تو هیپ هاپن نه اصلا تو هیپ خب ببین حالا یه سوال دیگه چی باعث میشه که این سه تا همکاری یهو بولد میشه همکاری اول و دوم اه، خب اه، به نظرم به خاطر جامعه آماری آرتیستاش به جامعه آماری آرتیستاش توی ایرانه اصلا نمیخوام صحبت کنم رجبه سری مسئول اما کار تکنا اینو یاست استاندارد واقعا استاندارد ولی اون یکی کار اصلا استاندارکست یعنی آرتیست ما توش از زهر بفتادن دو سه بار و این یعنی فاجعه به نظر من اصلا حالت صورت خوشی ندار ولی همکاری ما چرا بولد شد به نظرم خب ما هم پوزیشن خوبی توی رپ فارسی گرفته بودیم به خاطر کارهایی که پخش گرده بودیم و این که کار جوری بود که ما واقعا تماما تلاشمونو کردیم که تو بار کروکده کم نیاریم حتی نه کاور کرده. خب سعی میکنه مثل حامد پسخونه سعی میکنه مثل من واژارایی کنه ضربه منو بگیره خب این خیلیه تو داری کسی رو قلقلک میده که امینم و بارها قلقلک داده تو کاراش امینم میگه وقتی من کارشو میشنیدم میره پشت میکروفون قرار بود یه کوراس بخونه یه ورسیو اون میخونه با قافیه خود کلوچدای ادامه میده یه همچین آدمی رو ما قلقلک دادی من باورم نمیشد وقتی کار تموم شد گفتم نتونساص پسمون اونجوری بدارید واقعا نتونس خب عرض به خدمتت که حالا راجع به همکاری های آیندهت که نمیخواستی درصد صحبتی بکنی هر دوری که صلاح خودته من هیچ نظر نمیدم فقط اینجوری فقط میتونم میگم دارم خوب یه سری کارای یه سری فعالیتای به صورت انفرادی دارم انجام میدم جدا از اون سعی میکنم اگر دقت کنن توی دریچه یه سری حرفا زده شده نوید یک چیزی داده شده که دارم روی اون کار می کنم. و زمان می واقعا زمان میبره چون پروژه بسیار سنگینه. هیچ هم راجبش نمیگم. چون نمیخوام بس دریچه بشه. من اومدم اشتراک گذاری کردم با مخاطبم که دارم کار می کنم. چند سال طول کشید. واقعا طول کشید. و این از اون بیشتر طول می چون واقعا سنگینه. واقعا سنگینه. خب اه یه صحبتای ریزی کردی ولی چون داریم به انتهای برنامه و مصاحبه نزدیکتر می در سالی که داره تازه شروع شده دیگه. تا دهار عشقا قراره که چه کاری بکنه تا فروردین سال آینده ببین ما این مصاحبه ای داشتیم قبلن که یه گفتیر شد چهار سال دیگه <تصفيق> <تصفيق> من خب همونجور که گفتم نمیخواستم بگم غیرمستقیم گفتم ولی خب دارم رو آلبوم دوباره کار میکنم ولی آلبوم زمانبره یه الپیه که خیلی زمان میبره سعی میکنم وسطش حتی دوسته سینگل ترک اگر برسم حتما سعی میکنم یه ایپی بدم اگر برسم واقعا قول نمیدم ولی خب دارم رونم کار میکنم همزمان بستگی داره که شرایط فکریم چجوری باشه چون حرف علکی نمیزنم باید زمان بذارم روش چیزی بیاد و گفته بشه ولی بیشتر تمرکز همون دارم میزنم روشت هیپپپ کشنم خب ما مثلا یه سریع آرتیستاره داریم که به گفته خودشون یه ایپی دادم و سالیان سالی که پوز ای <اقید رو> دارم پوز همون ایپیشون رو بکنم حالا بگذاریم از این داستان ولی امیدوارم که حتی اقل سال پرکاری رو داشته باشی ببین من تو دریچه گفتم سکوت تا صحبت بدون دلیل بگو بینم فرقش خب من من زمانی حرف بردیمون میزنم که دو حالت داشته باشیم یا حرفم درک شده باشه کامل یعنی که ببینم نه بابا حرفم هم واقعا درک نمیشه و عمرم داره میره میام حرف بعدی رو میزنم که بعدا تاریخ ما رو قضاوت خواهد کرد خیلی نمیلغنگی بود <تصفيق> و در نهایت اگر که صحبتی داری میتونی انجام بدی و قبل از این چون میخوام بریم سر بحث بعدی من بابت خدافظی میکنم و مرسی از وقتی که گذاشتی عزیز دل دلمی لطف کردی هم همچین من یه،, یه صحبت خیلی کوتاه میکنم چون میدونم وقتتونم تمام شده باز هم خواهش میکنم خواهش میکنم فکر کنن مردم اینو همیشه میگم فکر کنن هنرمندهای نسل یک ما میخوان شما با فکر اونها تصمیم بگیرید با فکر خودتون تصمیم بگیرید فقط پیگیری این نباشید کی کیو کرد کی از کی حمایت کرد کی داره چی کار میکنه فکر کنید به اینکه چی کی گفت نه اینکه کی چی گفت <تصال> این خیلی مهمه و اینکه سعی میکنم تون سالی که پیش روه شرایطی رو فراهم کنم که بس کسایی که سالها دارن تلاش میکنم به حق خودشون برسن حتی شده باشه به قیمت بیخوابی بیشترم تموم بشه سعی میکنم کارو کار کنم خیلی دوستتون دارم خیلی مخلصم شما باید سیلش کنید خب مصاحبه دو وایمون با عشقان عزیزم شنیدیم امیدوارم که راضی بوده باشیم به انتهای برنامه صورتی یک سات و زمین رسیدیم امیدوارم که تا اینجا کار از این دو قسمت برنامه راضی بوده باشیم و خواهشم این که سعی کنید حد دل امکان نظرات، انتهادات، پیشناداتتون رو توی پیج اینستاگرامی که میذاریم چون من کار روی اینستاگرام ترابیب تراب هم شیر میکنیم اونجا با اون درمیان بذارید تمامالتون مثل قسمت قبلی میگن باعث خیلی آره. چیزها میشود دقیقاً و صحبت کنیم در مورد اتفاقاتی که توی پادکست افتاده ببینیم نظر مخاطبه رو و آیندوارم که رازی باشن. خیلی ممنون از این که با ما بودین در قسمت دوم یک ساعت با زیر زمین هیچ قولی با قسمت سوم نمیدم که بعد قول نشم تمام سعی اونین من و میراج به زودی به زودی قسمت سوم رو با مهمونهای جدیدتر خدمتتون خواهیم رسید گربن شما خودنگه احترام روز خوش